پیامبر صلی علیه و سلم بر فراز کوه صفا بعد از اینکه که پیامبر صلی الله علیه و از جانب ابو طالب مطمئن شد که او را تنها نخواهد گذاشت و در تمام مراحل یا رویاورش خواهد بود بر فراز کوه بنام صفا بالا رفت و فریاد برآورد. یا صباحا در آن دوران این کلمه را زمانه به کار بردند که امر مهمی به وقوع پیوسته است و یا لشکر حمله کرده است آنگاه هر یک از قبیله را با نام و رسم صدا زد ای بنی فحر ای بنی عدا ای بنی عبد مناف ای بنی عبد المطلب و غیر اقوام را صدا زد هنگامی که قریش این ندای پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدند، به سویش شتافتند و حتی کسانی که نمی توانستند خودشان حاضر شوند، نماینده‌ای را از جانب خود به این منطقه فرستادند. زمانی که همه آمدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر بر شما بگویم که پشت این دامنه لشکر آمده است تا به شما حمله کند، آیا گفته مرا باور می کنید همه آنها گفتند بله سابقا ندارد که ما از تو سخن دروغی شنیده باشیم پیامبر صلی الله علیه و فرمود پس با خبر باشید که من فرستادهی الله به سوی شما هستم بنابراین از من تبعیت و فرمانبرداری نمایید تا از عذاب سختی که در پیش رو دارید نجات پیدا کنید بعد از اینکه سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام شد مردم پراگنده شدند و تنها کسی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم به درشتی برخورد کرد ابو بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت حلاکت با ترا آیا برای این ما را دعوت کردی؟ وقتی که ابو لهب چنین گساخی را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نمود الله جل جلاله در ارتباط با درستی سخنان پیامبر صلی الله علیه و salam سوره تبت ابی لهب و تب تا خیر را فرستاد یعنی نابود باد ابو لهب و حتما نابود میگردد از آن روز به بعد پیانبر صلی الله علیه و سلم و یارانش به طور علنی و آشکار در مقابل دید مشرکان و بدپرستان به عبادت الله جل جلاله میپرداختند. با به تدریج دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان افرادی که در مکه زندگی می گسترش پیدا کرد و روز به روز تعداد مسلمانان افزوده میشد. و روابط آنها با اقوام و قبیلهشان تیره و تار می گردید. و این امر خشم و غضب قریش را برانگیخت. بزرگان قریش در دوران دعوت پنهانی با پیامبر صلی الله علیه و به مخالفت پرداختند و علت اساسی عدم مخالفت آنان این بود که آنان منافع اقتصادی و شخصی خود را در خطر نمی دیدند. اما در دوران دعوت علنی قضیه برکس شد و آنان به طور علنی و گسترده به مخالفت با پیانبر صلی الله و علیه وسلم پرداختند و آن هم به این خاطر بود که آنان به طور آشکارا منافع اقتصادی و شخصی خود را در خطر می دیدند چرا که روز به روز تعداد پیروان پیامبر صلی الله و علیه وسلم زیاد می شد و آنان وقتی چنین صحنه ای را مشاهده می کردند احساس کردند قدرت و شرف و موقعیت اقتصادی و اجتماعی گذشته خود را از دست داده اند بنابراین به این فکر افتادند که این نقصان را جبران نمایند پس از به وجود آمدن چنین حوادثی بود که شروع به آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه وسلم نمودند آنان نسبت‌های ناروا و زشت را به پیامبر صلی الله علیه و میدادند. دادند از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم را با القاب مانند ساهر، جادوگر، دیوانه، کاهل و شاعر می‌خواندند و کسانی را که برای حج آمدند آنان را از روی آوردند و این آیین جدید بر می می‌داشتند از سوی دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر فرصتی که دست میداد برای تبلیغ و انذار مردم و سوی الله جل جلاله استفاده می نمود و ابو لحب که هر جا پیامبر را می دید می گفت این مرد از دین برگشته و دروغ و گوست اما نتیجه این شد که کسانی که به مکه برای حج آمده بودند از دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم با اطلاع کافی برمیگشت و دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام سرزمین های عرب گسترش پیدا کرد کفار قریش وقتی که مشاهده نمودند که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم روز به روز گسترش پیدا می نماید و ابو طالب نیز یکی از افراد است که با تمام جان و مال از پیامبر صلی الله علیه و سلام دفاع نماید. و دارای اصل و نسب بزرگی است و در میان قریش دارای احترام و منزلت خاص و ویجع است برای آنان بسیار مشکل بود که حرمت و حمایت او را بشکنند بنابراین این امر آنان را بسیار نگران کرده بود و به فکر افتادند که به بهترین وجه از این تنگناه بیرون بیایند آنان پس از بحث و مذاکرات طولانی بهترین و مناسبترین شیوه و روش را در این دیدند که با فرد بزرگ قریش ابو طالب وارد گفتگو شوند تا بلکه بتوانند پیانبر صلی الله علیه و سلم را وادار نمایند تا از دعوت خیش دست بردارد عده نزد ابو طالب رفتند و گفتند ای ابو طالب پسر برادر شما خدایان ما را دشنام می دهد و از دین ما عیبجوی می نماید و پدران و نیاکان ما را گمراه می خواند دست از حمایت او بردار تا ما خود جزای او را بدهیم و یا اینکه جلو او را بگیر تا به خدایان ما ناسزا نگوید ابو طالب آنان را قانه نمود و آنان بازگشتند دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنان روز به روز گسترش میافت و آنان زمانی که وضعیت را چنین دیدند دو مرتبه نزد ابوطالب آمدند و گفتند از شما درخواست کردیم که دست برادر زاده خودتان را از سر ما بردارید اما شما هیچ گونه اعتنایی به درخواست ما ننمودید اکنون ما دیگر تاب و تحمل نداریم که به خدایان ما اهانت گردد یا باید دستش را از سر ما کوتاه کنید یا ما بر علیه تو و برادرزادات به جنگ خواهیم پرداخت این امر بر ابوطالب گران آمد و نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و پیشنهاد قریش را به او مطرح کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود جان به الله سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند تا از دعوتم دست بکشم نخواهم پذیرفت تا اینکه الله متعال دعوتم را بپذیرد و یا اینکه در راه دعوتم بمیرم پیانبر صلی الله علیه وسلم از این مجلس برخواست اما ابوطالب ایشان را صدا زد و گفت ای برادر زاده هم، هر چی می خواهی بگویی من به خاطر هیچ کس و هیچ چیز دست از حمایت تو بر نمی دارم وقتی قریش دیدند که پیامبر صلی الله علیه و پیوسته و با حالت خستگی ناپذیر به کارش ادامه می دهد و ابو طالب نیز دست از حمایت او بر نمی دارد تصمیم گرفتند که عیماره بن ولید بن مغیره را که رشیدترین و زیبااندامترین جوان قریش بود نزد او ببرند تا در عیوض ابوطالب نیز پیانبر را در اختیار آنان قرار دهد تا او را بکشند ابوطالب گفت می خواهید پسر را به من دهید تا به نمایندگی از شما او را بزرگ کنم و در عیواز فرزندم را به شما بدهم تا او را بکشید نه هرگز چنین کار نمی کنم در جست جوی حق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 اینها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواسته الله بود که ما کردیم گشتیم با استازه هاش ناشتیم با جای مختلف هاش و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره تانسیم به با توفیق الله تعالی ما به قد رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمع شب از رادیو صدای خلافت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 بلیغو حضرت المولا الاماما و وفع فی کل داریم دولت های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و الله و با برنامه در جستجوی حق خوش آمدید میزبانی ما با مسلم خراسانی را بپذیرین امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید برادران گرامی در برنامه امروز خود باز هم میریم با یکی از برادران هم صحبت میشیم که چیگونه به حق پیوستند و چقدر از خلافت اسلامی اظهار خورسندی میکنند امید است که تمام شنونده ها در جستجوی حق شوند چنان که الله جل جلاله در قرآن کریم در سوره حجرات میفرماید که اگر بر شما کدام شخص فاسق کدام خبر رمیه را آن تحقیق کنید امروز شیطان های هستند به نام عالم که مردم را به گناه های مختلف فریب می دهند. امید است که شنونده ها فریب ملاهای های سو را نخورند و در جستجوی حق شوند و به حق بپیوندند و تحقیق کنند امید است که برنامه های رادیو صدای خلافت را پی در پی و سخنان حق و باطل را موازنه کرده تا ایکه حق آشکار شود خب میریم با ای برادر سخن مگیم که چیونه به حق راه یافته لن نرا هذا ولا ذاکا و ذاکا بر این دولت الحق هناك یا ابا بکر الحسینی فهکا مده الايد تبيعك اماما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر نيشک شما خبرم عارفي بكنين نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اسم من محمدس از ولایت بلخ انجام مد الحمد لله کو دولت اسلامی در یک ان جزاك الله خیر شما تحصیل کردین برابر ما تحصیل کردین کله پانزه خواندین خاطرن خود ما پانزه انجینری انجینر ساختمان سوال دینه ما شاء الله انجینر شپ شما ایفای م کردین ده بلخ ها در کابل مدت بیش از هشت نو وظیفه داشتوم در دفاتر, دفاتر کفر دولتی خب ازویج احساس خوب داشتین یا بعد؟ <تصفيق> نخیر اگر ما می فهمیدم که در اینجا وقتر اطمینان قلبی و قدر آرامش هست نه تنها وزیفه خدا بلکه تمام زندگی خوده برای یک دقیقه ازی می دادم و ایره می خریدم و بدست اگر می تانستم و تمام زندگی ایره بدن میکدم در اینجا ولی الحمدلله الله لطف کرد که تمام وقت ما اینجا و اتو سکون و اطمینان قلبی و اینجا مگذاره که اصلاً خی یک احساس دیگری برای مر می جزار کللا خیر برادر مک شما رو ماشاالله بسیار بدن قوی معلوم میشه فکر میکنم ورزش کارم هستین هما تر هم کردیم کدام رششته پیش می بری خد؟ وشو میکردم. ش یکی از رشته های است مدت چیز کم پنج سال چهار سال هم کردیم. امی وشو با چند قسمت می بر ما بگین؟ وریا وشو سه بخش داره بخش تالو، سانشو و نانچوان. ماشاءالله، امی برادرای دیگه ایم که ورزش میکنن وقت خود در شارا و یا زیر نظامی زایم میکنن. اینا چطوره به نظر شما که زیر خلافت اسلامی بیان و یا دمون منظومه زندگی کنن؟ چرا یکقدر زحمت زیاد میکشن؟ آیا ای فایده دار برشنده دا یا خیر؟ کسایی که ورزش میکنه کنه و پیامه برواه امیه است که شما خوب بدن تان قایی بکنین هم از نگاه فکری و جسمی خود قوی بکنین و به زودترین فرصت از دیار کفری خلاص کنین باین به طرف خلافت اسلامی و از این نیرو و انرژی در راه اسلام مصرف کنین این واقعا بهترین نعمت الله جا و که در آخر نمان دیتی ایک وقت فتنه نصیب ما هم شده و شکر زیر نخود ادا کرده بتونیم الحمدلله بهترین نیمت است شما قبلا در کدام تنظیمات جهادی دیگه بودین خیر بله یک مدت بسیار کم البته با امارت قسم همکاری میکردیم ولی امارت کی بود ما بخاطر از همین کار میکردیم که خلافت اسلامی قائم شود یک خلیفه و یک امیر مسلمان در تمام روی زمین باشه او نمیخواستیم که عربی باشه عجمی باشه هر کسی که باشه خلیفه یک خلافت ای ان شاء کفار خلافت اسلامی رسوقت دارن ما دوباره اوره زنده بسازیم و دوباره برپا کنیم به می خاطر اگر در تنظیم کار میکردیم هدف ما می بود والحمد لله اون خونای پاک گرفته شد بمی بود که خلافت قائم شده که خلافت قایم شده دیگه ما با این پیوست الحمدلله ما بود نه که به خاطر افغانیت و نه ای به خاطر کدام رهبر اینا ما بجنگیم خب برادر محترم قسمه که برای شما معلوم است فوج مرتد عیسای پاکستان در مقابل خلافت اسلامی مجاهدین دلیر جنگ میکنن اینا دعوا دارند که آلما و مخلصین که شهید شدن سابق اینا خاطر امارت اسلامی می جنگیدن شما چی فکر میکنین؟ شهدا به خاطر قائم ساختن خلافت اسلامی می جنگیدن و یا خاطر چوکی و منصب در شک نیست که اینا جنگیدن و جهاد کردن ولی به بخ... چی خاطر؟ اگر بر الله جنگیدن و به قامه خلافت اسلامی خال خلافت قائم شد تمام الحمدلله تمام شروط یک خلیفه در وجود امیر الم ابو بکر بخدودی حفظ الله موجود است هیچ شک باقی نیست دیگه پس اینا به مو خاطر جنگیدن پس من باید باید باید یک جای شوان در غیر ازو حکم اینا حکم امو کسای دیگه است که قبلا با خودشان می جنگید اینا بعض شبهات را ایجاد کرده بدن امو مجاهدین مخلصه می خواستن فریب بتن. می گفت که ای خلافت خلافت نیست و ای تمکین نداره و بعضی شبهات دیگه ایجاد کرده ای شما کدام شبهی پیدا شده بودی خیر بله آیی شبها خو از طریق خمیر رسانه های کفری رسانه هایی که امروز دست یهود و دش هست دیش هر مومن مسلمان اگر یک ای شبها ها اجاد و شب همین دادن دیگه ای برای هر مسلمان مخلص مجاهده که میخواه در راه اللہ بجنگ مثل که الله پاک میفرمه اگر کسی بر شما خبر رمیه را شما تحقیق کنین و خود با اطمینان بسازي از دان یک کسی شما قضاوت نکنی دیو بامی بیان از نزدیک ببینن و منهجش ببینن اگر اینها به اندازه سر سوزن در خلافت کلام عمل اینها را خلاف اسلام دید کلام عملشان خلاف قرآن و سنت بود خب بوز میشه که انتقاد بکنن و ببینن در غیر از الحمدلله ما نمیبینیم در امی صاحاتی که خلافت است اصلا یک بته از چرسه نمیبینی بوته از تریاک نمی ای بی خو کاملا رفع است. الحمدلله واقعیت یک جای بسیار نیمت بزرگ است با افراد منطقه که میشینیم میخیزیم اون‌ها از قبل خود که یاد می‌کنه و فعلاً خوشی اونا رو می‌بینیم با خلافت اسلامی واقعاً بشاره بشار نشین خب برادر سوالاتی که در ذهن خودت ایجاد شده بود چگونه همین سوالات باز حل کردین شما این شبهات ما الحمدلله وقتی که رادیوی خلافت اعلان شد بعضی از شبهات بود که اینها تمامشان با مصیبه‌ای که با بزرگای خلافت اسلامی در رادیو شد تمام شبه حل شد الحمدلله بل ما تونستیم که جرات بگویم و تصمیم و قاطع کرده آمدیم بیدیم الله. در بل خورادی رو را نمی گیرد چی تو تانستین که شما در بل برنامه های را بشنوین؟ الحمدلله وقتی که در امنج برادرهای که دینا رو می باز ریکارت میکردن از طریق فیسبوک و یوتوب و بازه از طریق اینترنت به ما می رسید و مو کلپ های دی واقعیت که اصلاً زمین بر ما جای نمیداد میفتیم که باید به طرف اجرت بکنیم الحمدلله شما پیام ها را از طریق رادیو صدای خلافت شنیدین و امی سوالات شما حل شد ان با امید از ی که دیگه برادران هم رادیو صدای خلافت را بشنوان و بعض شبهاتی که پیشان نجات شده. همین سوالات شان حل شد و بیاین به خلافت اسلامی و از زندگی خود لذت ببرند شما چی پیام دارین بر امی جوانا؟ بر جوانا این است پیامم اینکه الله حمد کسایی که در هستند و, و درس و اینا مصروف هستند خدا درس ها فراب ندید اینجا الحمدلله درس مکمل نصاب تعالیمی جور شده و استادای بسیار استادای مخلص و خیلی ورزیده اینجا هست انشاءالله اگر مکتب است مکتب تان اینجا ادامه بتین اگر که پانتون تان است اگر هر چیزتون تان که است ورزش است همه چیز ده اینجا از امینجا اجرت بکنین و به طرف دولت اسلامی اجرت بکنین دولت اسلامی انشاءالله که مجایدین مخلص داره و از هر نوع شبهات که دشمان ها اجات میکنن پاک است و اجرت بکنین این برتان بهتر است برای دشمنای دین، بر کفار و مرتدین و نظامهای تاغوتی چی پیام داری؟ پیام بر اونا است که اول دیگه بس کنیم جنگ در مقابل خلافت و بین بی به حق بپیوندی. اگر این نمیشه، ان الله این جوانای هست و به میدست خود، ان الله همشون نظب خواد کردیم و قسم که بسیارشان زبح شدن و بسیار دگیشان که باقی ما انشاءالله اینام زبح همشه خوب بازم برشان امی است که قبل دی که کار دوما به گلونتان برسه به این باید بکنین و از نظام های کفری براتتان ایلان بکنین بیبرتان ای بهتره. است جزاک الله خیل جزاک الله خیل بیام های صوتی و نوشتاری شما پیام هایی که مسلمانانی مناطق مختلف بر رادیو صدای خلافت فرستادند پیام های سوتی و نوشتاری شما متوحدی نسمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنمندگان رادیو صدای خلافت به بخش پیام ها خوش آمدید خوشحالیم که یک بار دیگر از شما شنمندگان محترم پیام های صوتی و کتبی دریافت می کنیم is... کسانی که تا حال با ما وصل نشدند نیز می توانند به ما پیام بگذارند در صفحات اجتماعی رفته صفحه پیامگیری رادیو راژیو صدای خلافت را جستجو کنید و پیام های کتبی و صوتی تان را بگذارید و ما از طریق رادیو صدای خلافت پخش میکنیم خوب حال بعضی از پیام هایی را که به صفحه پیامگیری ما آمده به خانش گرفته و همچنان پیام های سوتی را پخش میکنیم نخست پیام سوتی دریافت کردیم از برادر محترم خود یاسر امار یاسر امار پیام سوتی فرستاده توجه شما را به شنیدنی پیام جلب میدارم السلام علیکم و رحمت الله خدمت همه برداران خلافت انشالله که همه خوب باشین آقات خوب رو به سر ببرین و از همه شما دوستان تغاظه دارم که دعا کنید که الله تعالی مارم قبول کنن تا بیم در خلافت در زیر پرچم اسلام زندگی بکنیم و سفارش من به همه کسانی که نزدیش من همینه خود که خودشون رو برسونن به خلافت که انشالله بتون در سایه خلافت زندگی بکنن علیکم خوب شنوندگان عزیز پیامی سوتی یاسیر امار را شنیدید که می گفت مسلمان ها باید به با دیار خلافت اجرت کنند و ایجاد در زیر سایه شریعت اسلامی و عزت اسلام زندگی کنند. به هر صورت تشکر از یاسیر امار برادری محترم دیگی ما اسم خود را متذکر نشده میگه سلام علیکم و رحمت الله و براکتو ازتان کمک میخواستم برای اینکه استشهادی انجام بدم امکاناتی ندارم باید چی کار کنم خب به جواب بیادر بیادر میشه بگویم که ای بیادر در کجا به سر میبره و با کدام گروپ جهادی ارتباط داره یا جبهه و جماعت جهادی زندگی میکنه یا برون از صحی جهاد در خانه زندگی میکنه و عموری عاده خود پیش میبره؟ در قدم دوم باید را گفت که انجام عملیات استشادی بدون انسجام بدون پیوستن با یک جماعت جهادی و یک جماعت مسلمانان امکان پذیر نیست باید بیادر اگر صدای ما را از طریق اینترنت یا از طریق رادیو میشنوه باید اول هجرت به پیش بگیره و به دیاری که خلافت قائم است آنجا عملیات جهادی بر علیه کفار و مرتدین جریان داره در ساحات جهاد میشه عملیات استشادی هم انجام داد و علیه کفار و مرتدین با انوای گناگون مبارزه کرد به هر صورت جزاک الله خیرن از بیادر محترمی ما برادر دیگه ما بنامه ابو محارب المهاجر الثانی نوشته میکنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز در رادیو خلافت الله به شما جزای خیر دهد بنده از مدیران کانال های فارسی خلافت هستم خواستم این پیغام را به مسلمانان بفرستید که الحمدلله اخبار صحیح و دقیق مجاهدین توسط کانال های رسمی مانند اماق و ناشیر فارسی و کانال های مناصر فارسی تایید شده پخش می شود در تیلگرام البته و به اخباری کس کفار و نوکرانشان گوش نکنید و اخبار را از دولتی مبارک خود دنبال کنید جزاکم الله خیرا جزاک الله خیرا بیادر محترم ابو محارب پیام شما را به خانش گرفتیم الله کنه که مسلمانان دیگه مناطق هم ای پیام شما را شنیده باشه و چنانچی شما توصیه کرده اید اخبار صحیح و دقیقه از کانال های رسمی دولت اسلامی دریافت کنه به هر صورت جزاک الله خیرا بیادر محترم برادر دیگه ما اسم خود نوشته نکرده میگه سلام بر همه آدمین های و مسلمان از الله تعالی برای همه در این ماه آرزوی موفقیت خستگی ناپذیر برای تک تکتان تک دارم ای برادرانی که در زیر هر نام و پشت هر صفحه به ما مسلمین و مجاهدین خدمت میکنید و اللهی از سمیم قلب شما را دوست داریم و برای شما عزیزان از الله تعالی طلب مغفرت میکنیم یا الله عدمین های صفحات پرخروش اسلامی را صبر و استقامت اطا کن یا الله به آنها غرفه های فرداوسی را عطا کن یا الله ما را از دستیسه های کفار و فتنهای های کفار دور نگهدار. یا الله موحدین ما را از چنگال اطلاعات هر دولت کفری دور نگه دار یا الله ما و اعلامی های ما را با سرور ما و صحابه گرامیش حشر کن امین یا رب العالمین ما بسیار پیام جالبی بود جزاک الله خیرن بیادر محترم بایی پیام جالبتان در آینده هم منتظری همین گونه پیام های جالب شما می باشیم برادر دیگه ما هم اسم خود را نوشته نکرده می نویسه به امیر المؤمنین حفیظه الله بگویید خراسانی های این سوی مرز را هم دریابد و ما را از چنگاری ظلم، بدعت، نفاق و رفس نجات دهد در اخیر میگر نحن جندک یا ابا بکر ماشاءالله پیامی بسیار جالبی بود الله کنه که به گوش امیر المؤمنین حفیظه الله برسه ایران فراموش نکنید که هرگیز هرگیز مسلمانان در هیچ کنج دنیا از خاطره و از زین امیر المومنین نبرامده و الحمدلله خلافت به اثر کردگی امیر المومنین الله در غمی امتی مسلمه است و همیشه در کوششی است که چگونه بتوانه مسلمانان را از چنگال ظلم بدعت و نفاق نجات به جزاک الله خیرا. برادر دیگر ما به نام ابو علی مهاجر نوشته کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ای برادران مسلمانم بنده ابو علی مهاجر یکی از یاران دهندگان خلافت می باشم امیدوارم الله تعالی مظلومین را نجات داده و تباهی و خاری را نصیبی کافران و ظالمان صلیبی و یهودی و رافیزی و دیگر کافران و مرتدین دین فروشان کند و از الله رحمان خواهانم و از الله رحمان خواهانیم تا این خلافتی مینها نبوت را نصیبی هر مسلمانی در هر جای جهان کند. امین یا رب العالمین باقیتون بی الله و تمتد انشاء الله الله تعالی. ماشاءالله بسیار پیامی جالبی بود. جزاک الله خیرا ابو علی محاجر. برادر دیگه ما هم اسم خدا نوشته نکرده میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته راه هجرت را برای ما نشان دهید به جواب بیادر میشه بگویم که هر کسی که نیت هجرت به سوی دار را داشته باشه راه باز است آدرس معین ولایت ها معین شده اگر شما خراسانی باشید میتوانید به خراسان هجرت کنید و اگر بعد دیگه ولایت های خلافت اسلامی نزدیک باشید میتونید بعد دیگه ولایت های خلافت شما هجرت کنید. چنانچه میدانید خلافت اسلامی ولایت های مختلفی باز کرده. اگر بیادر از خراسان باشه به خراسان نزدیک باشه میتونه به خراسان هجرت کنه. آدرسی ما در خراسان هم معلوم است و همه دنیا میدانه. جزاک الله خیرن به هر صورت الله تالا مطابق نیت شما عجر دهد و به زودی رای هجرت را بر روی شما باز بگرداند. برادری دیگه ما نوشته میکنه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابودجونه خراسانی هستم و سلام های خود را تقدیم شما و شیرهای خلافت میکنم الله متعال جزای خیرتان دید که اخبار و بیانات را به تمامی انصار و مسلمین میرسانید انشالله روزی خواهد رسید که عادل همه جهان را خواهد گرفت و موحیدین پیروز خواهند شد و با عزت و سربلندی زندگی خواهند کرد و کفار و مرتدین ذلیل و خوار خواهند شد و از همه مناسیرین و طرفداران خلافت می آن خدمتی که در توان دارید دریغ نکنید و کوچکترین خدمتتان را کم نشمارید و همدیگر را تشویق بخیر کنید و در هایتان بر علیه مرتدین و مشکین از یک دیگر سبقت بگیرید و خوابها را بر آنها حرام کنید و زندگی را تبدیل به جهنم. آنهایی که جانها را فدا کردند مانند ما جان شیرین داشتند اما ایمانشان را قوی ساختند و در گفتارشان صداقت نشان دادند و اهل و عیال و زندگی راحت را فیدای دینی الله کردند تو هم اگر در بیعت و گفتارت صادق باشی و همت کنی می توانی زمین را زیر پای کفار و مرتدین جهنم سازی و شیری از شیران خلافت شوی ماشاءالله بسیار پیام جالیبی بود الله کنه که برای هر مؤمن و مسلمان همین گونه ایمان و همین گونه جذبه ایمانی نصیب شد و امیدو که نصیت های بیادر به گوش تمامی مسلمانان خواستن به گوش مسلمانان خراسان برسه جزاک الله خیرا بیادر محترم ابو جانه بیادر دیگه ما هم اسم خدا ابو جانه الانصاری میگه پیامی سوتی فرستاده که حال توجه شما را به شنیدنی پیامی سوتی جلب می دارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبود جانت الانساری هستم از بلات کندوز باشما. شما خواستم پیام خود را تقدیم نمایم. سلام و احترامات قلبی خش را برای تک تک از مجاهدین جند الخلافت تقدیم می نمایم. الله سبحانه و تعالی برای شما صبر استقامتی به پایان انایت بفرماید. از خداوند متعال میخواهم با برکت این ماهی مبارک رمزان دروازه فتوحات را برای شما بیشتر باز نماید خداوند تبارک و تالا با فضل و کرم خوش حجی عظیم نصیب بفرماید خداوند ظالمین را تبا بفرماید خداوند جماعت اقرا پیروز و موفق داشته باشد خداوند با شما از شما با خداوند باشد ان شاء موافقت بیشتر پیش رو دارید صبر استقامت داشته باشد. در آخر از مجاهدین خواهانم این است که بیشتر بر از منو بجنگان متلهدیین است خب شنوندگان عزیز شما پیامی ابو دجانه انصاری را از کندز شنیدید اول به مجاهدین و مهاجرین خلافت اسلامی دعای خیر کرد و بعدش هم آنها را نسید کرد که برای کفار و مرتدین و مبارزه خود ادامه دهند. به هر صورت جزا که الله خیر نبود و جانه انصاری از پیام جالبتان در نیز منتظری همین گونه پیام های شما می باشیم با شنیدن امی پیام ساوتی ما هم از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشیم این بود داشته های بخش پیام های امروزی منتظر پیام ها و نظرات و پیشنهادات شما در آینده هستیم. کسانی که تا حال به ما پیام نفرستادن میتوانند پیام بفرستند در صفحات اجتماعی رفته صفحه پیامگیری رادیو صدای خلافت را جستجو کنید و پیام های ساوتی و کتبیتان را بگذارید و ما از طریق رادیو صدای خلافت پخش میکنیم و به گوشی دیگران میرسانیم از همه کسانی که به ما پیام فرستاده بودند اظهاری تشکری میکنیم به همه شما الله متعال جزای خیر دیهد تا برنامه آینده که باز هم با پیام های جدید در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به الله واحد و لایزال میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسموا